بخش دوم انواع بیشعورها فصل ششم بیشعور اجتماعی گاهی اوقات نیمه شب از خواب میپرم و با تعجب از خودم میپرسم یا بی هم در همون زمانی که ساغر انسانها تکامل یافتند روی این سیاره به وجود اومدن یا از سیاره دیگری مثل اورانوس اومدن؟ اریکا قربانی بی که خانوادگی بیماری بیشوری از بعد فرهنگی انواع بسیار گوناگونی شامل میشه متاسفانه در تمام مراجع و منابع بحث در باره به بحث در باره بیشعورهای تمام ایار محدود شده و تازه همین بیشعورها هم در شاخصترین موارد و موقعیت نظیر کار، اعتراضهای مدنی، دولت و اعتقادات توصیف و بررسی شدن. البته این موارد مهمه و درباره اونا در بخشهای بعدی سخن خواهیم گفت، اما نباید به این بحانه از بیشعورهای اجتماعی که چندان به چشم نمیان قفلت ورزید. اینا همون بیشعورهای معمولی هستند که در پیادروها، خیابانها، سینماها، میهمانیهای خانوادگی و حتی رختخواب ما به راحتی یافت میشن. البته گاهی اوقات تشخیص بیشعورهای اجتماعی از افراد عادی بسیار، سخت میشه ولی اینکه تمام خصوصیات معمولی بیشعورها رو هم از خودشون بروز بدن. نخستین دلیل این مسئله اینه که اونا با زیرکی فراوان عدای آدم معمولی رو در میارن و ما هم باور میکنیم. اونا با مهارت پشت آداب و رسوم اجتماعی پنهان میشن و به سختی کار میکنن تا ما رو متقاعد کنن که اگرچه یه جورای خاصی کارهاشون خیلی بدتر از کارهای مشابهی که بقیه میکنن نیست. مسائل عاطفی و استعداد بیشعورهای اجتماعی در سوء استفاده از احساسات دیگران در عدم شناسایی و افشای بی تأثیر نیست. مثلا یک ممکنه از بستگان ما باشن و به همین علت چندان تمایلی به قبول بی‌شعوریشون نداشته باشیم. از همه اینا گذشته کمتر کسی حاضره به راحتی قبول کنه که مادر خودش یک بی شعور زاییده دو ممکنه که اونا رو به عنوان بهترین دوستان خودمون برگزیده باشیم و از این رو قبول این اشتباه چندان خوشایند نیست هیچکس خوشش نمیاد که به این نتیجه برسه که با یه بی ازدواج کرده چرا که این امر مستلزم قبول اشتباه خودش در انتخاب هم میشه سه ممکنه که برخورد های نادری با این اشخاص داشته باشیم. اگه خود ما بیشعور نباشیم، معمولاً میلی نداریم که بر مبنای یک یا دو برخورد نتیجه بگیریم که پیشخدمت فلان رستوران بیشعوره. ما معمولاً دوست داریم که نیمه پر لیوان رو ببینیم. چهار. دوست داریم فکر کنیم که بیشتر مردم طبیعی و باشعورن. البته تجربه های واقعی نشون میدن که اکثریت مردم اورن، اما این تفکر که ما در حال تکامل هستیم و نوع انسان هرگز به دوران بوزینگی باز نمیگرده در ذهن بسیاری از مردم حک شده. با تمام این اوصاف بارها پیش اومده که به طور قاطع حکم کنیم که یک نفر بیشعوره. مثلا امت بیشعور تمام ایاره. پسرموم شعور نداره. مدیر سینما یه سر خیابون یه بیشعور گهگیه یه بار پارسال توی سینما بودم که صدای حرف زدن می اومد و چون او فکر کرد من دارم حرف میزنم از سینما بیرونم کرد اما بعدش که فهمید اشتباه کرده برام بلیت مجانی فرستاد. کارمنده اداره یه پاست یک بیشعور آبزیر کاه ترش روه معلم پسرمون یه بیشعور خوش روه مطالعات من نشون میده. که محافل و موقعیت های خانوادگی بهترین وضعیت رو برای رشد و گسترش بیشوری فراهم میکنه. خصوصاً خصوصا در اون مهمانی که جمعی از امه ها و خاله ها و امو ها و دایی و مادر بزرگا و پدر بزرگا و بچه های فامیل دور هم جمع میشن تا بعد از بیست و پنج سال همدیگر ببینن معمولا چنین میهمانیهایی حاصل تصمیم یک یا دو بیشعور بیکاره که به این نتیجه رسیدن که فامیل خیلی وقتی که از هم دور افتدن و باید دوره هم جمع بشن. همه می دونن که چرا افراد فامیل این همه ساله که دوره هم جمع نشدن اما هیچ کس جرعت اظهار اون رو نداره. پنابراین هفتاد هشتاد نفر آدم که هیچ چیز مشترکی به جز نفرت از هم دیگر ندارن تحتیلات مصیبت ها رو در کنار هم میگذرونن تا به دو بیشعور تمام ایار احساس قدرت و تسلط بیشتری دست بده. نسخه ساده‌تری از این سناریو در مناسبت های مثل جشن تولد و عید سال نو اجرا میشه. یه نفر که علاقه زیادی به زادروز و نسب داره جشن تولدی برای والدینش میگیره و از تمام افراد فامیل انتظار داره که توجه کافی به این واقعه مهم تاریخی داشته باشن حتی اگه شده به قیمت پرواز از یک ایالت دیگه با هواپیما برای شرکت در مراسم هیچ عضر و بحانهی به ویژه داشتن کار و گرفتاریای زیاد پذیرفته نمیشه و اگه چنین این هم بشه، حتماً کسی که تولدشه شیطنت خواهد کرد و در چند جای مجلس با صدای بلند چند بار آه خواهد کشید و خواهد گفت وای، چقدر دلم میخواست فلانی اینجا بود یعنی دقیقاً شما اینا نمونه های کلاسیکی از اثرات بیشعوری هن. بیشعوری که مهمان یا ترتیب میده با گویزت کردن خیر و صلاح دیگران و مجبور کردنشون به انجام کارهایی که خیر و صلاحشون رو در اونا میبینه در حقیقت به دنبال تصبیت برتری و تقویت نفوذ خودشه. اگر زبان خوش کفایت نکنه به سرعت وارد مرحله تهدید و ارعاب میشه. مثلا ساگیر اعضای فامیل رو تحریک میکنن که با تماس تلفنی خود شما رو تحت فشار بذارن. عنوان نمونه یک بیشعور شما رو با همین روش مجبور میکنه که در جشن تولد پدرش شرکت کنی. بعد قرار میشه که همه پولشونو بذارن روی همدیگه تاهیه گران قیمت برای پیرمردی که آفتاب لب بومه بخرد حدیه که میخوان بخرن، نه شما میپسندین و نه به درد اون کسی که اون رو خواهد گرفت میخوره. با این حال، مجبوری که لبخند بزنید و بخش قابل ملاحظه از حقوق بی زبونتون رو به عنوان دونگ تقدیم کنید. وگرنه، از طرف همه اونایی که در خرید اون هدیه ی بزرگ ولی بی خاصیت مشارکت داشتن، مسخره و تحقیر خواهید شد، حتی اگه خودتون هدیه مجزایی خریده باشید در چون مجالسی فقط یک هدف دنبال میشه. یه نفر با دستاویز قرار دادن آداب و رسوم در پی اینه که بر تمام افراد یک خانواده بزرگ اعمال قدرت بیشتری کنه به زودی هر یک از اعضای فامیل متوجه میشن که همه این کارها ریشه در بیشعوری داره اما کمتر بستگانی پیدا میشن که برای متوقف کردن این بازیا و ایستادن در مقابل این بیشورهای اجتماعی کاری بکنند. حقیقت اینه که بیشتر این بیشورهای خانوادگی با دعای خیر افرادی که تعمشون شدند پیشرفت هم میکنند. در واقع، به رغم وجود تمام خصوصیات عمومی بیشعوری در رفتار و کردار بیشعورهای اجتماعی، این نوع بی به این دلیل با قدرت به حیات خود ادامه میده که قربانیان بی اجتماعی با میل و رغبت شرایط رو تحمل میکنند البته این مسئله هم که بسیاری از این افراد حاضر نیستند قبول کنند که با یک بیمار مبتلا به بی طرفاً بی تاثیر نیست مسئله که تا حدودی قابل درک زیرا عموماً افراد عادی تمایلی به ایجاد درد سر نداره. نتیجه که تمام اینا اینه که بیشعوری این نوع بیشعورها روز به روز دارتر و موقعیتشون تثبیت میشه. در تمام این مدت این بی با مهارت خاصی قواعد دوگان و سگانهای را به کار می‌برند تا دیگران و گیج و مبهود کنند و رفتاری با دیگران دارند که هرگز تحمل رفتاری مشابه با اون را از سوی دیگران ندارند. اونا قوانین و امتیازات خاصی را برای خودشون باز می می‌کنند که همزمان مشغول نهی دیگران از آنهایند. زمنان اصلا این خیال باطل رو که با مرگ یکی از این بیشعور های بزرگتر فامیل بتونید از شرش خلاصی به ذهنتون راه ندید این قبیل آدم اهل ول کردن این دنیا نیستن و اگه عاقبت مجبور به این کار بشند هم بعد از مرگشون دست از سرتون بر نخواهند داشت پاراتلا وارفینگتون گورکن مشهور انگلیسی در کتاب شست سال در میان مردگان خاطرنشان می کنه که بی حتی بعد از مرگشون هم بیشعور باقی میمونن. اونا در بسیاری از مواقع پس از مردنشون هم از قبول حقیقت مرگ سر باز میزنن و بر سر بستگان زندهشون که شکر خدا دیگه نمیتونن صدای اونا رو بشنون جیغ میکشن. خود من عمویی داشتم که از همین دست بود. او معمولاً در مواقع نامناسبی در هیئت روحی نچندان سرگردان ظاهر میشد و هر بار که باز میگشت بخشی از هیئتش را از دست داده بود. آخرین باری که ظاهر شد همه چیزش را از دست داده بود و فقط بیشواریش باقی مونده بود. هیچ بلایی خانمانسوز تر از بیشواری نیست.